آدم خیال با روزی بود و روزگاری بود مرد بازرگانی بود که کارش خرید و فروش روغن بود. در همسایگی او هم درویش ساده دلی زندگی میکرد که از مال و دارایی بیبهره بود و چون کاری و شغلی نداشت با قناعت زندگی میکرد و معروف بود که آدم نجیب و خوشقلی است. اما بازرگان که دارای ثروت و درآمد بسیار بود و به صداقت و نیکی همسایه درویش هم ایمان داشت، او هر بار که معامله یه انجام می داد و ای می برد یک پیاله روغن برای درویش می فرستاد. درویش هم که مردی وارسته بود و هرگز از کسی پولی نمی گرفت زیاد ناراحت و شرمنده نمی شد. اما چون به قناعت عادت کرده بود از روغنهایی که هر چند روز یک بار برایش می فرستادند، کمی مصرف می کرد و بقیه را در کوزه بزرگی که در خانه داشت می ریخت. روزی که کوزه از روغن پر شده بود درویش وارسته با خود گفت من که به این روغنها احتیاجی ندارم خوب از آن را به کسی دیگر بدهم که از من نیازمند تر باشد ولی از همسایه ها که هیچ کدام احتیاج ندارند پس کجا ببرم و به کی بدهم؟ نه بخشیدن یک کوزه پر از روغن به کسی دیگر هیچ فایده ندارد میخورند و تمام میشوند بعد هم بخشش از کسی خوش است که درآمد مرتبی دارد علاوه بر آن مگر خود من چه بیدارم که نباید زن و فرزند داشته باشم پس بهتر است این کوزه را بفروشم و پول آن را سرمایه کنم و هر روز درآمد بیشتری کسب کنم و آن وقت هر روز میتوانم به دیگران کمک کنم همینطور با خود فکر میکرد خب ببینم این کوزه چقدر روغن دارد حالا فرض میکنیم پنج من پنج من روغن چقدر قیمت دارد حالا فرض میکنیم دینار. خب اگه این روغنها را رو بفروشم با این پول میتوانم پنج گوسفند بخرم حالا هم که تابستان است و خوراک گوسفند فراوان است برگ کاهو، پوست هندوانه و صحرا هم که پر از الف است روزها آنها را میبرم صحرا میچرانم پس از شش ماه اگر هر یک دو قلوب بچه بیاورند میشود پونزده تا مقداری هم علف خوش جمع میکنم برای زمستان شش ماه بعد هم باز بچه میاورند حالا میگیریم این دفعه یکی بزایند 20 تا یه سال دیگر هم آنها را نگه میدارم سال بعد شماره آنها زیاد میشود میشود یک گله گوسفند آن وقت تا وقتی خودم تنها هستم از پول شیر و، ماست و، پنیر و، سرشیر و خامه و چرهه و پش مکود و آنها هم برای خودم و خانهام اساس و لباس و اسباب حسابی میخرم و می‌شوم یک پارچه آقا راست گفتند که گوسفند حیوان پرفایده است هر چیزش به درد میخورد حتی پشکل آن را میخرند برای کود باغچه. بعد وقتی که خانه و اساس زندگیم مرتب شد و به سهم خودم آدم دارایی شدم و مردم مرا صاحب گوسفندان بی شما رو باغ و خانه شناختند آن وقت می فرستم از خانواده بزرگان دختری خاستگاری می مدتی پس از عروسی صاحب فرزند می شدم. اخه اگه بچم پسر باشد یا دختر باشد فر نمی کند مطلب مهم این است که خوب تربیت بشود و وقتی بزرگ شد هنرمند. اندو با و کاردان و خوشبخت باشد البته در تعلیم و تربیت و او بسیار کوشش میکنم اما چون دیگر آن وقت خودم نمیتوانم به کارهای گوسفندان برسم یک نوکر و یک کلفت استخدام میکنم تا گوسفندان را به چرا ببرند و شیر آنها را بدوشند و به آنها آزوغه بدهند و به کارهای خانه هم برسند ولی بچه های این دوره خیلی شیطان هستند. وقتی فرزندم پنج شش ساله شد و به فکر بازی افتاد ممکن است گوسفند ها را اذیت کند و ممکن است یک روز بخواهد سوار آنها بشود. البته او بچه است و باید به زبان خوش به او فهماند که گوسفند حیوان سواری نیست. ولی خدمتکار که دلش برای بچه‌ی من نسوخته ممکن است یک روز عصبانی بشه و بچه‌ام رو کتک بزند البته البته بچه نباید سوار بوستان بشود آره ولی نمیخواهم فرزند قصه بخورد خدمتکار غلط می که بچه‌ی ما رو کتک بزند و اگر چنین اتفاقی بیفتد با همین عصا که در دست دارم شلون در درویش ساده دل همینطور که در عالم خیال فرو رفته بود و در فکر تنبیه خدمتکار بود چوبی را که در دست داشت محکم به کوزه روغن زد و کوزه روغن که در بالای تاقچه قرار داشت شکست و روغنها به در و دیوار و سر و صورت درویش پخش شد. آن وقت مرد خیالباف فهمید که خیالبافی و فکر بیهوده چیز دیگر است و نقشه صحیح و دوراندیشی چیز دیگر و کوزه روغن را به جای خدمتکار نباید تنبیه کرد اما درویش خدا را شکر کرد که این کوزه روغن بود و خدمتکار نبود وگرنه تازه اول دردسر بود که قاضی موضوع را تعقیب کند و درویش را به زندان بیندازد